بسم الله الرحمن الرحیم بعد از مدتی تعتیدی شاکر نعمت حضرت حق هستم که این توفیق رو من عنایت کرد دوباره بتوانم در حوزه اعتقادات بحث رو ادامه بدم بحث ما در فست گذشته در باب خداشناسی بعد از گذران سه مرحله مقدماتی تحت عنوان شناخشناسی شناسی بحث اول ما بود و بعد انسان شناسی که حقا جا دارین بحث انسان شناسی به طور مبسوط و با یک رویکرد دیگری بهش دوباره بپردازم منتها در جای خودش و بعد هم بحث دین شناسی. این سه بحث به طور پیوسته شدن مقدمه برای خداشناسی در باب خداشناسی ما که بحث اصلی ما بود و بخش زل مقدمه ما بود در اونجا در دو بخش صحبت کردیم بخش اول ضرورت است اصل خدا اصلا خدا باید باشه یا نباشه اگه نباشه چه خللی ایجاد میشه بعد امکانش بعد وقوعش بعد عدله رو با رویکردهای فطری عقلی و نقلی ادامه دادیم تا رسیدیم به بخش دوم بحث که بحث از توحید بود و نفی شرک و اهیانا پرداختن به بحث کوتاهی در رابطه با حسنا و اسماعظم حضرت حق که اسماعالحسنا و اسماعظم بیشتر جنبه تفسیری دارد ولی باید بهش پرداخته بشه چون به نوعی شناخت به ما میده تا رسیدیم به بحث فست جدید یعنی اینکه الان هستیم در این پنج شنبه. آخر ماه رویول اول در سال 1438 هجری قمری اینجا معمولا آیان اصول اعتقادات رو اونچه که روال عادیشه به پنج اصل تقسیم میکنند آن ما راجعب اینا صحبت کردیم چرا پنج اصل حالا چند اصل هست دو ولی همین روال آدی رو میگن اول توحید بعد عدل و بعد نبوت و بعد امامت اونگاه معاد در حالی که اساساً بحث توحید و عدل در زمره اصل خداشناسی است اصل اول ما این است که اصل خدایی هست یا نه به این خدایی که هست چگونه باید بهش برسیم طریقه معرفت او و اگر به او رسیدیم چی چیزی رو دریا میابیم و خود همین اصل خداشناسی شناسی وقت دیگه بحث توحید رو هم در دلش داره و بحث که ام این در این فست جدید بخواییم بهش بپردازیم بحث از صفات خداست و این بحث صفات خدا رو ما مقدمه قرار بدیم برای بحث شی عدله چون عدلم خودش یکی از اوصاف حضرت حقه من را که این تقسیم رائش همچنین تقسیم صحیحی هم نیست یعنی یه ملاک نداره چون تقسیم زمانی میتواند صحیح باشد که مقسم در واقع در تمام اقسام راه داشته باشه وقتی شما میگید که انسان رو تقسیم بکنید میگید انسان یا مرد است یا زن خب انسان میشه مقسم زن و مرد هر کدام میشن چی؟ اقسام تعریفی که برای انسان وجود داره در تمام اون دو قسم چیه ها وجود داره اینو بهش میگن یک تقسیم صحیح. ولی وقتی شما میگید اصول دین یکیش توحیده یکیش عدله یکی... مقسمش درست در نمیاد اصول دین یکیش خداشناسیست هستی شناسی یکی راه نماشناسی و یکی هم راه شناسی زید راه شناسی بحث نبوت و امامت مطرح میشه به زید راه شناسی بحث معاد مطرح میشه و زید هستی شناسی این سبخی که ما گفتیم مطرح میشه بحث خدا شناسی بحث توحید و نفی شرک و اکنون سایر اوصاف الهی در بین اوصاف الهی توحید خیلی مهمه لذا بحث موجزاله نسبت پیش قرار دادیم و باز هم در بین اوصاف الهی بحث از عرض با که عدل خیلی مهمه مهم بودن عدل اگر ما بخوایم مثلا الان خدمتون سه چهار تا از بخش های بحث عدل رو مطرح بکنیم سه چهار تا از مسائل بحث عدل رو مطرح بکنیم خب همه اضعانی بیمیندان که ما بحث مهم نیه. یکی بحث قضا و قدره که همه به اتفاق در قضا و قدر مشکل داریم یکی بحث جبر و اختیاره یکی بحث شروره شر جایگاهش در قضای الهی چی در بحث حکمت الهی چیه شر شرور یکی بحث بیماری های لاعلاجه تا یارون مثلا فرض که علاج بیماری میگه این به عدالت خدا برمیده خوب این نتونست درست تصویر کنیم مطلب رو فقر عدم امکانات این فقر آیا واقعا به عدالت خدا برمیگرده اینا جوز سلسله و باعثه چیه بله عدله که ما بهش خواهیم پرداخت ولی حالا نه حالا نه چون مهمه بهمه برای شروع دربست یه مقدمه ای میگین مقدماتی که ما میگین همواره خودش از زل مقدمه گاهی چیه دو تا ویژگی داره گاهی مهمتره گاهی طولانیتره برابری وقتی میگم بحث مقدمه از برش کن تو بعد وقتی دستم به مقدمه مهمونه کسای که کتاب میخونن مقدمه کتاب نمیخونن بعد بگم هیچی رو نفهمیدم خب. بابا مقدمه رو که طرف برای چی نمیشده کتابو مقدمه ما رو گوش بکنید تا ببینید که ما اصلا راجب چی بخوایم صحبت بکنیم پس فصل جدید ما راجب هصل دوم رائج نیست برگه راجب بخش سوم بحث ماست ما از اول وزرش هستی شناسی در هستیشناسی، شناسی خداشناسی آمد و توحید نفی شرک امروز از جلسه به بعدش آلا بحثه صفات الهی خب صفات الهی مهمه ما میگیم خدا قادره ببینید ما مشکلات معادمون به قدرت خدا برمیگرده مشکلات معادمون در قرآن کریم اگر کسی قربو بکنه منکرین معاد هیچ خود دلیل نداره. همه استبعاد دارن هیچ کس دلیل نداره تا روز قیامت هم هیچ کس دلیل نمیاره متاکسانی که آگاه نیستن فکر میکنن که اونا دلیل دارند هفت تا استبعاد وجود داره همه استبعاد نسبت به برپایی معاد به مسئله قدرت خدا بر چون شما قدرت خدا را نمیشناسید، شناسید لذا در بحث انکار معاد همچنه بعد هم نمی لغزش پیدا میکنه. که حالا بدتون نمیاد نه انصافا شد نهایت باشه و حسب انصاف لغزش پیدا میکنید چون نمیدونید قدرت خدا چیه هیته قدرت خدا چیه بس صفات مهمیه قدرت دیگه باید قدرت چیه. گاهی شما در نجوه های خودت بگید خدای ما رو یادت رفته این یعنی که تو علم خدا رو نمیدونی علم خدا و موجودات به نهوه تمه خدا دو از مار یادت رفته است مثل صفحه رادار اون تا نمیبینیم موجودیه چون علم خدا رو نمیشنسیم تا ببینیم که باید صفات رو به چه شکلی ها آره را انشاءالله ورود پیدا بکنیم تا به اون بحث عدلم انشاءالله زودتر برسیم او بحث با ما اینه که ما بخوایم از اوصاف الهی بحث بکنیم چیتر ما اینه بحث ما در فصل جدید خداشناسی هستی شناسی بحث از اوصاف الهی و خدا برای که اوصاف الهی شناخته بشود اولا باید دو تا اصطلاح معلوم بشه اصطلاح اسم و وصف ما میگیم فلان لفظ اسم خداست و فلان لفظ وصف و صفت خداست فرق اسم و وصف چیه یک دو بیان این تعریفی که بخواییم بکنیم بر اساس اون است که در علم کلام مطرح میشه ما اسم را تعریف بیکنیم ولی بر مبنای آنچه که نزد علمای علم کلام مستلحه نه ادبا نه فلاسفه ما به این بزرگواران کاری ندارین یعنی من تعریفی که ارائه میدم تو ذهن تونه که آقا ما توی ادبیات اگه یادمون باشه مثلا اسمو میگفتن که دلالت بر یک ذاتی میکنه ولی فارق از معنا این رابطه اون نداره اون رو تعریف کرده این چیز دیگه است متکلمین که میدونید که کیا هستن دیگه اینا رو قبلا توضیح دادیم مراد از متکلمین نه این که اونایی هستن که حرف میزنن متکلمین دسته ای از دانشمندان هستن که کارشون دفاع از دینه که در بحث های اولیه گفت. خب حالا بریم صورت تعریف بحثار هم با هم مقایسه نکنید. بس تفسیر نیست. این خود سخته. یه خود سخته. چون ذهن شما نامه اینوست با این اصطلاحاته، ولی مثلا به آخراش که برسه اینشالله آسان میشه. دلیل جدید که ذهنتون اونس پیدا کرده با این اصطلاحات. خب آقایان متکلمین در واها کسانی که مرزبان دین هستند، دفاع کنندگان هستند دین هستند، اینها در تعریف اسم این معنا رو میگن میگن اسم نشانه اس برای خود ذات ماهیت اشیا بدون در نظر گرفتن حالت یا ویژگی که در اون ذات وجود داره به اصطلاح میگن نشانه است برای دلالت کردن بر ماهیت منهای سوهیه ماهیت منهای سوهیه یعنی اون حقیقتی که من بخوام راجع به صحبت بکنم منهای سوهیه یعنی که بابا من دیگه پیرامون اون ابعاد اون قضیه صحبت نمی‌کنم من راجع به حالات اون حقیقت صحبت می‌کنم من راجع به اصل اون هم اسمش رو میگم مثلا میز دیوار، چراغ، آسمان، زمین، اینا اسمن. برای دلالت کردن بر یک حقیقتی بدون لحاظ کردن چی؟ حالت یا ویژگی میز دلالت میکنه بر این حقیقتی که در واقع همتون می‌دونید. فارق از اینکه مربع باشه یا مستطیل باشه سگوش باشه گرد باشه چوبی باشه آهنی باشه فایبرگرست باشه اینا میشه حالاتش من وقتی میگم میز دلالت بر این حقیقت میکنه دیگه اون حالات درش خوابیده نیست دیگه دلالت میکنه که این میزی که من در مجال صحبت کنم چوبیه یا مثلا آهنی نهار خوریه یا صبحانه چوبش پساند چوبه چون من فقط دارم راجب اون حقیقت بخوام بگم بخوام اشاره بکنم به اون حقیقت وقتی من میگم دیوار دلالت بگند بر اون حقیقتی که زیر سخت قرار میگیره یا از بنا زمین میاد بالا اما گلا این دیوار گچیه یا مثلا فرض کنید بهتونیه این که حالا مثلا هم فرض کنید خشتی اصلا به این امورش کاری نداریم ما به اون حالات کاری نداریم بیان می کنیم، اشاره می کنیم استفاده می کنیم از یک لفظی برای دلالت کردن بر یک حقیقت منحیص و حیع. یعنی حالات اون حقیقتی که برای اون همیتی نداره آسمان هم که صحبت می کنیم همین طور زمین هم که صحبت می همین اسامی که شما باهاش آشنایی این رو میگن اسم تعریف اسم خیلی ساخنی اما تعریف وصف متکلمان این عبارت رو میخونم بعد توضیح میدم متکلمان مشتقات رو صفت میدنن و مبادی اشتقاق رو معنا این تعریف مشت... صفت شد هر کلمه مشتقی از نظر متکلمه چی هستش؟ صفت حالا ببینیم که کلمات مشتق رو صفت می و هر مشتقی رو که از یه مبدعی اشتقاق پیدا میکنه اون مبدع رو معنا میدونن یعنی چی اولی سخت به نظر می آسونه. نه توجه بفرمی کلمه عالم با کلمه زید چه فرقی داره زید از هیچ ریشهی مشتق نشده ولی عالم از یک ای مشتق شده درست شو؟ با اونی که از هیچ ای مشتق نشده میگن جامد به اونی که مشتق شده میگن چی؟ مشتق دیگه گرفته شده، عقص شده میگن مشتق بعد هم در ادبیات فارسی پشتقم نمی‌شوسیم هم در ادبیات عربی ما دوم با ادبیات عرب کار می‌کنیم چون ما با بسماء خدا برسیم ما کاری نداریم به سایر مشتقات با بسماء خدا برسیم همه اسماء خدا یا حداقل اکثر اسماء خدا جنبه اشتقاقی دارن خب مشتق رو میگن صفت یعنی چیزی گرفته شده از اون ریشه‌ای که گرفته میشه به اون ریشه میگن چی مبدا عالم از چه ریشه گرفته شده؟ ا. قادر از چه ریشه گرفته شده؟ قدرت. کاتب از چه ریشه گرفته شده؟ کتابت ظارب از چه ریشه گرفته شده؟ ضرب. زر. اون ضرب و کتابت و قدرت و علم میشه مبدع اون چیزی که از این کلمه ساخته می شود و در قالب مختلف قرار می گیره بهش میگن چی؟ مشنه بعد این مشتق رو در لسان متکلمین میگن چی آقا؟ وصف. پس ما اگر در صفات الهی میخواییم صحبت بکنیم، از ریشه میخواییم صحبت بکنیم و هم مشتق می صحبت کنیم؟ از مشتق. اون این مشتق حمله بر ذات میشه دیگه. میگید خدا چیه؟ قادر است. خدا چیه؟ عالم است. ما از این مشتقات صحبت میکنیم به دلیلی که ببینیم آیا این مشتق در خدا راه داره یا نداره منطقه به طور ادبی و علمی که بخوایم صحبت بکنیم میگیدن در خدا نمیگیم این مشتق راه داره میگیم این صفت در خدا هست یا نیست صفت تکلم مشتق یا اینکه نجامده مشتقه مشتق هست صفته مرید بودن خدا مرید یعنی صاحب اراده خو خب مشتق دیگه مسلمه دیگه مبدا اشتقاقیش خب بگم خدا مرید است اولا یعنی چی بعد به چه معنایی هستم مرید است خدا مریده یعنی که یک بنده خدایی بود تعطیل بود مغزش تعطیلاتی بود بعد گفتش که آ الله اکبر دروغه چرا در اوغه گفت خداموت کپ نیست که بگیم من بزرگترم میگم من کوچیک بنده ام مثلا لا اصلا. خب این حالا مرید یعنی چی همین مورید و مراد بازی است که ما داریم خدا مورید ما هست خب این معنای ارادش چیه ارادش اش به گناه هم تعلق میگیره به ظلم هم تعلق می گیره اصلا اراده در خدا جز کدوم دست صفاته صفات ذاتی یا صفات فعله اینا قوه این بحث تا ندونی خدا رو نمیشنسی دفعه من در وحث هستی شناسی گفتیم ذاتش که محاله بشنسی چون ذاتش یک حقیقت است. و تو یک موجود چی هستی؟ متناهی متناهی هیچ یاتی بر نام ندارد ندارد. نامی نداره بناش شناخت که مهاله برام روایت کندم بی خود دنبال قضیهش نیا. تنها راهی که ما بتونیم خدا رو بشناسیم چیه؟ هم صفاته بنابراین صفات رو با جدی گرفت و به معرفت خدا نمیرسید شما. اگه بگید ما می‌خوام صف از طریق افعال خداوند خدا رو بشناسیم اونجا هزاران مشکل پیش میاد. اونا که خدا رو از طریق افعال شناختن مشکلات عمدشون در عبد خداست. چرا؟ چون میگه اگه من نتوانستم تجارت بکنم فقیرم پس این فعل خداست. پس خدا ظالمه. پس از افعال نمیرسی به خدا. این افعال مول اونایست که خیلی لطیف یعنی در اوج مراتب سلوک قرار دارن میگه راحتی بشه کسی از آفرینش به خدا برسه یه چیزایی رو شدیدیم یه چون یه چیزایی بیشتری رو نمیدونیم باور کردیم که ما مثلا از طریق آفرینش رو کی میرسه آیاتون الله ولی للموغنین برای علیقین برای احل یقین براه من که تازه گام اول درم من باید از طریق صفات خدا رو پیشتستم ولی نمیتونست و ذاتی که نمیتونم از طریق آفلنشم که راه من نیست میبونون از طریق چیه ها صفات پس صفات رو با دنبارش رو صفات هم گفتیم از ذنه متکلمین یعنی چی؟ بله مشتق مشتقات که بر ذات اقدس اله چی میشه؟ هم بشه یعنی راه داره صبوت داره خب پس اسم علامتیست برای دلالت کردن و نشان, داد نشان دادن اون ذات و اون حقیقت بدون اینکه ابعاد عباد رو بخواییم چیکار بکنیم و صفات در واقع ما بخوایم به عباد وجودیش هم چیکار بکنیم، اشاره بکنیم و همین که مشتقه یعنی میخوایم بگیم اون مبدع اشتقاق در خدا چیه وجود داره بخواییم بگم اون علم در خدا هست اصلا بخوایم اشاره به اون علم خدا بکنیم با آله و با قادر بخوایم اشاره به چی خدا بکنیم ابعاد وجودی حضرت حق ولی با لفظ جلاله که میگن الله اسم حضرت حقه شما به کدام از ابعاد وجودی حضرت حق اشاره کردیم فقط با لفظ الله به ذات عقدس اله اشاره که تنمیتون شده دیگه هیچی از کمالات و از الله نمیفهمید. لذا در معنای الله میگن الله در واقع لفظ جلاله است که وضع شده است برای ذات اقدس حق تعالی که مستجمع جمیع کمالات است به طور درهم همه کمالات هست اما به کدوم کمال اشاره میکنه فقط به شما میگه این ذاتی رو که من دارم به تو ارشاد میکنم و به نشان میدم مستجمع همه کمالات هست یک مثال بسیار پایینش که سابقا هم میگفتیم این آب میوه های چم میوه است. خب این آب میوه است که شما میرید بگیرید ولی حقیقتش چند تا میوه هست. اون اسمی رو که میذارن دیگه دلالت منه که این میوه هست اون میوه هست اون میوه, هست،, اون میوه هست که نداره که میگن یا میوه و سنفه از اسمشو اسمشون گذاشتیم کذا و دلالت میکنه برین که هفت میوه درش هست اما به کدوم که میوه ها اشاره میکنه هیچ کدوم میگه اسم ذات بنابراین الله اسم در بعضی این نقل مشهوره و در بعضی از نقل ها میگن یک اسم دیگه هم خدا داره و اون رحمانه و این استناد میکنن به آیه شریف سوره مبارکه اسرا صد و ده قل قلد الله عوید الرحمان این ما تدعو فله الاسماء الحسنى خب پیغمبر ما آمد تا تعدد آله هر از بین ببره ست تا خدا نیستش که یه خداست خط بطلان بر مسیحیت و تفکر سنویت و تفکر بطپرست خب برد بطپرست تا گوشت رو تیز کردن سر به سجده میذاره میگه یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا ودود و یا کریم و یا رحیم باید بره اسمای مختلفون فرداشون آ این پیغمبری که میگفت یک خدا بیشتر نیست تا نام میبره در مقابل اینها فرمود بگو قلت الله شما خدا را به وفظ الله بخوانید اول رحمان یا به لفظ رحمان بخونید این ماتدو. به هر ای که خوندید راه داره فلاحول اسم ها روستان. چون اسم ها متعدده ولی حقیقت وقت از در کنار قرار گرفتن رحمان در کنار الله میگن رحمان هم اسم چیه؟ بله اسم خاصه یعنی دیگه صفت نیست بنابراین در واژه رحمان هم فقعا اعظم فتوای سنگیری دارند و اون این که رحمان به تنهایی اسم غیر قرار نمیگیره چون که الله به تنهایی اسم غیر قرار نمیگیره شما نمیتون اسم کسی روز الله روز الله داد الله یار ولی کسی به الله و متعمد باشه حرام داره کار اعرام مرتقب شده همین تو میگه رحمان شما اسم طرف هایم تو بگی رحمان باید بگی چی؟ رحمانی رحمانزاده این رو خوقها عموما بهش فتفا میدن حالا فردا دنبال این نفر این اسمش رحمان شد یعنی حتما از این مرجعی دیگه تقریب میکنه ولی عموما فتفاشون اینه اگر رحمان اسم خاص حضرت حق بشود نمیتواند اسب غیر قرار بگیرد مگر که یک اضافه ای داشته باشه پس اگره اره رو شنیدی دیگه انشالله چون سخته که عبدالرحمنی. یا عبدالرحمنی بله پس دو تا اسب داره و بقیه میشن مشتق و صفح. در صفات اولا از یک ریشه مشتق شده بعد اشاره به یک بودی از ابعاد وجودی حضرت حقه و این بود از ابعاد وجودی حضرت حق رو میخواید یا در خدا اثباتش بکنید یا میخواید از خدا کارش بکنید سلبش بکنید این میشه صفت حالا چند تا خدا اسم دارد چند تا صفت دارد اینا بحثهاش گذشته تو اون بحثه بخش اول گفتیم حالا اشارتون ماش هم اشکال نداره اشارهش به این است که اولا چون خداوند موجود نامتناهی است پس دارای اسم متناهی نیست تنها چیزی که ما میتوانیم بگیم این است که از اسماء خداوند دو تاش به ما رسیده و از مشتقات و صفات خداوند حالا هر چند هزار تا که باشد در مثلا فرض کن برای اختلافی در بین آول قرار بین مدرسین هستش که مثلا اسما که در داا وجود داره هست مثلا هزار تا یا 1001 کیه مثلا میگن دیگه هزار و یک اسم یا هزار اسم از صفات خدا به ما رسیده فقط همین که خدا دارای هزار وصفه تو با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار جلوه تماشا کنم با صد هزار دیده تماشا کنم من من محدودم ولی تو جلواتت متعدده جلوات متعدده بر ذات خودت بر دیگران نیست چون پیغمبر ما هم فرمود ما عرفناک حتما یعنی ما هم که همه بالاتریم همه جلوات رو نیافتیم نیافتیم چقدر ادب خب این هم به سفات حالا این سفات رو بخوام تقسیم کنم آهسته آهسته میریم جلو که یه خوده سختیش کمتر معلوم بشه تا حالا که سخت نبود که بله بیتصافیه دیگه سخت بود آسان گردید بیتصافیه بعد حالا صفات رو تقسیم میکنن به صفات سبوتیه و صفات سلویه ه با اونجو که قبلا شنیدید تفاوت داره بنابراین دقت میطلبد صفات ثبوتی آن دسته از مشتقاتی هستند که در ذات باری تعالی ثبوت و تعقق دارند این دسته از اوصاف در واقع بیانگر بعدی از ابعاد کمالات حضرت هستند این دسته از سفات چون موجب زیبایی ذات میشوند به صفات جمال معروفند و چون بیانگر ابعاد کمالی باری تعالی هستند صفات کمالیه هم با آنها گفته می شود دیگه فعلا میخوام توضیح به هادی صفاتی به خدا حمل میشه بیانگر کماله توی بحث های هستی شناسی گفتیم که خداوند واجب الوجود من جمیع جهات وقت اونجا اثبات کردیم که واجب الوجود اون حقیقتی است که از جمیع جهات دارای چیه کمالات مامن کمالن الا اینکه در ذات عبد ساعت باشد اون هم به نحوه اتم و نامحدود مطلق هم اطلاق در کمال یعنی هر کمالی که هست و هم کمال مطلق نامحدود اینو در اونجا گفتیم حالا از اون کمال نامحدود که بخواییم تعبیر بکنیم به برخی از صفات تعبیر میکنیم برخی از صفات این شایستگی رو دارن که بعضی از ابعاد حضرت حق رو معرفی بکنه. مثلا میگه بعد کمالی حضرت حق رحمت رهینیشه ادالتشه رعفتشه. لطفشه لطفش اینها چون یک کمالی رو دارم. پس ما شما بتوید لطف به چه معنیه یکی از اسمای خدا چیه یا لطیف لطیف به چه معنایی لطیف به معنای موجود شکست ناپذیر ببخشید لطیف به این معنیه عزیز به این معنیه عزیز به این مناس. عزیز, عزیز, عزیز به چه معنیه موجودشی که اصلاب بزید مهمترین اسم خداست منابراین که همه عالم آدم تو دهنی بزنه میگه به عزتی یعنی که برای شما به اندازه بال پشه هم قدرتی قائل نیست به عزتی من این کار رو میکنم تو چیه رو کنیم هیچ, هیچ. خدا رو قسم بده به عزتش قسم نده باط یاد بگیر که با خدا چجوری صحبت بکنید این یه دوره صفات شناسی میخواد حالا صفات ثبوتیه بُعدی از ابعاد کمالی حضرت حق نشون میدن ولی اینو دقت بفرمایید این نکته حائز اهمیته که صفاتی ثبوتیه هستند که هیچ شائبه ای از دغسان درشون راه نداره هیچ شاعبه از نقصان در صفات ثبوتی راه نداره بنابراین صفات ثبوتی حضرت حق آن دسته از صفاتی هستند که بیانگر بعدی از عباد کمالات حق تعالی هستند بدون اینکه دلالت و شاعبه از نقصان در اونها وجود داشته باشه یعنی چی؟ من از آیان سهال میکنم و خانومهای محترم نه شجاعت صفت خوبه یا نه؟ خوبه ولی شما نمیتونید به خدا بگید یا شجاع. این شجاعتی که برای شما اگر اتفاق بیفته چه کیفی میکنی؟ ولی برای حضرت حق صفت ثبوتیه نیست بلکه این صفت متزمنه معنای نقصه برو با شجاعتت کرد کن رضا خدای جاپ خودش میگه من شجاعم میگه من عزیزم شجاعت به معنای نترسیدن و نه هنگام مواجهه با موجودی که امکان آسیب پذیری از او وجود داره حالا یه موقع اون موجودی که ممکنه ازش آسیبی مترتبه به شما بشود سوز که جیغ جیگ بیزنی. یه موقع است یه موقع هست بالاخره یه چیزی است که به شما چیکار میکنه یه آسیبی رو به شما وارد میکنه بعد شما در مقابل اون موجودی که توان آسیب رسوندن به شما داره شما شجاعانه میستید یعنی چیکار بکنید یعنی نمیهراسی یعنی چیها؟ نمیترسید. برای شما نمیترسید خب این براش شما عین فضیلته ولی در مقابل خداوند عین نقصه چون موجودی بخواد به خدا آسیب بزنه که خدا بگه من نمی قربونش برم در سوره بابانکه هش که می که زعفت طالب و مطلوب اک شما ها که دنبال مگس می هم توی که داری می هم اونی که داره فرار میکنه جفتتون زعیفید پس شجاعت در مورد خداوند صفت ثبوتیه نیست صفاتی در مورد خداوند ثبوتیه هستند که هیچ گونه ای از نفس در شون تو متضمن معنای نقص هم نباشه این جدیده و اما صفات سلبی صفات سلبی خیلی صفات مهمی هستن اساس صفات سلبی چون دلالت بر نقصان و فقدان کمال میکنند صفت سلبی دیگه آقا این کمال وجود نداره ناقص موجود از خدا چون دلالت بر نقصان و فقدان فق کمال میکنن از خدا وان سلب بشه و این موجب میگردد وقتی شما نقصان رو از ذات اقدس الوه سلبش میکنید این موجب میگردد تا اینکه حضرت حق از هر نقصی و ایوی پیراسته باشند پاک و منزه باشند و بدین وسیله غیریت خداوند از سایر موجودات اثبات می شود و می شود لیسک لیسا لیسک مثلهی, مثلهی شید در صفات سبوتیه نیست در صفات سلبیه است. پس تو باید بفهمی و بدانی صفات سلبیه چی و وقتی از خدا سلبش بیکنی یعنی چیکارش میکنی؟ چون همین صفات سلویه هستن که ذات اقدس اله رو هم تام میکنه و شما در قرآن کریم میگید لئی سکه مثلهی از مثل نداره مثل نداره یعنی که هیچ کمالی نیست که در اون نباشه نفی فقدان کمال این بشه صفات سلویه در واقع اشاره به سلب صفات نقص دارد عجز یعنی فقدان کمال قدرت یعنی آدم که بگن آجیس عجز میشه فقدان کمال چی؟ قدرت و شما این فقدان کمال قدرت و کمال قدرت رو از خدا چیکار کار بکنید؟ بله؟ فقدان کمال قدرت معنای سلبیه و معنی ایجابیه. سلبیه یعنی ناتوان یعنی کمال قدرت یعنی ناتوان آقا وقت شما این ناتوانی رو خدا چیکار کار بکنید؟ نفل یه در نفل میشه جی؟ یه در نفل میشه جی؟ سمات. اصلا صفات سلبیه بازگشتش به صفات سعوتی هست این هم مطلب جدیده شما چیزی در خدا کم نمی کنی. اصلا چیزی که وجود ندارد به خدا راه نمین این چیزی خود کم کرد. نقصی نبوده تا بخواید سلبش کنید. میگید این اصلا نیست. بین نبودن و نیستن زمین تا اون چیه؟ میگید رفتم نبود. ولی وقتی میگی نیست. یعنی اصلا نیست به بودن کاری نداره. هیچ شاعبه بودن درش نداره. سفاد سلبیه نیست. و بازگشتش به صفات چی آقا؟ صبوتی است. وقت وقتی خداوند را به صفات سلبیه مورد تحقیق قرار این صفات سلبیه وقتی خدا پاک میشه منذح میشه از کلیه شواعب از کلیه نقائص از اینکه شبیه غیر باشه وقتی این خط بودلان بخوره دارای چی میشه یک جلال و هیبت لذا به صفات سلبیه میگن صفات چی جلالیه به عظمت میوفته چون نه تنها دارای کمالات مطلقه است بلکه فقدان کمال اصلا در ذات و او را راه نداره عجیب. که از خدا نمی ترسد بحث جلال خدا رو هرگز درک نکرده گزیگه از خدا نمی ترسد یه تی از رو این برای اهلش دیگه توضیح نمیدم چون بخوام بحثم کامل باشه دیگه حیفه که من این رو اگر دوستانم که دارن می نویسن بخوام توی پاورقی بیارم تو اصل بحث بیانم و توضیحش حالا میدم هر کی فهمید فهمید اگه نفهمیدم اب نداره یعنی حداقل این که برای امروز اب نداره ولی مهمه حالا بخوام وقتو پر کنم بس مهمه ولی خب به خود دقیقه حالا میدونم آخرش هم میگی فهمیدیم تا اینجا همه بحث های دقیق. حالا یک بار رو بخونم. صفات سلبی به هیچ وجه به معنای وجود نقصان در ذات باری تعالی نیستند. بلکه همانند صفات ثبوتی از کمال ذات حکایت می‌کنند. یعنی صفات سلبی هم خودش چون اصلا صفت باید بیانگره کمال باشه واقعا صفات سلبی چجوری بیانگره کماله تو دیگه چیزی چجوری میگیری واقعا چجوری کماله میگه نمیگیری مثلا نیست همین که نیستش میشه کمال این کل حرفه برای که دیگران که گوش میکنن نگن که آقا مایی تو نگفتی صفت یعنی بیانگره بعدی از کمالاته خب صفت سلبیه که تو داریم نگیری چی رو داریم چه حکایتیه میگه این نیست که سلبش بکنم میگم این که نیست همین که نیست یعنی کمال گرفتی اینو خیلی عالی بود دیگه خدا دید واقعا زیرا در صفات سلوی در واقع مقام که شایسته مقام الهی نیستند و به نوعی مستلزم نقص و عجز موصوف خودند از ذات خداوند صلب میشه. برای مثال متحرک بودن یک موجود حاکی از نقص آن است. وقتی میگن آقا فلانی حرکت داره یعنی نقص داره. چرا؟ چون حرکت یعنی رساندن شیء از استعداد به فعلیت. سیر از استعداد به فعلیت و میگن حرکت. این تعریف حرکت در فلسفه است نه در تعریف حرکت در فیزیک اینکه شما دارای حرکت جوهری هستید یعنی همواره در ذات خودتون دارید از استعدادها به چی تق... ت... در واقع تغییر پیدا میکنید؟ بله به فعلیت ها یعنی به استعدادات شکوفا بشه حالا یکی 90 سالش شکوفا نشده چه اتفاقی داره از داره ملا صدرا بنده خود اونجوری میخوره زمین نمیدونید که چی بگه اونجا رو دیگه نمیدونه چی میگه. او 90 سالش هیچ تغییری نکرده. ولی تغییر حرکت، حرکت جوهری که دارم میگم یعنی شما از استعداد تبدیل میشید به شکوفایی به فعلیت. نه حرکت و حرکت آیا صفت خوبیه یا صفت بدیه؟ برای انسان خوبه چون انسان ناقص خلق شده، باید به فعلیت برسه. ولی زاده اقدسه اله چی دارد؟ صبات در حقیقت داره. ثابته. لزات وقتی خدا خوش میشه بیشه. وقتی خدا راضی میشه. لزات وقتی خدا قذب میکنه لزات وقتی خدا سخت میکنه تغییر درش ایجاد. اگه گفتی تغییر ایجاد میشه. اصل شد که. هیچ تغییر درش ایجاد نمیشه. بنابراین تو باید بدونی وقتی خدا خوشحال میشه. نگه ها, ها, ها اصلا ها نیست گفت کردم و بندم این بین است نیست چون در ثابته و خداییش وقت حرکت ندار و حرکت برای من و تو یک معنای مثبته خوب حرفاییه انصافه با تر همینویی یعنی همین علم خوبه مصبت بدونی کجورت برین خب برای مثال متحرک بودن یک موجود حاکی از نقص آن است زیرا حرکت بدین معناست که شیء متحرک ابتدا فاقد کماله یعنی صرف استعداد صرف بذره کمال خاصی است و... یعنی نداره اون کمال رو. و پس از حرکت با آن کمال دست می وقتی بذر رو میکاری بیوه نداره ولی وقتی آبش میدی دونش بیدی، آبش میدی کودش میدی بعد مراقبت ازش میکنه این تبدیل میشه به نهال نهال، تبدیل میشه به میوه بعد به اون استعداد کافیش میرسه بعض اون استعداد رو داره ولی میوه دیگه اون فعلیت اون آخر کاره این حرکتش نکه انتهاش اونه بنابراین حرکت در موجودات تغییر تغییر یعنی که تو بابا اول این کار نبودی یا حالا این کارش شدی حالا این کارو شدی ولی خدا این نیست که است که چنین معنایی با وجوب وجود و کمال مطلق ناسازگار است ولی ازا باید آن را از ذات الهی سلب کرد لیکن این سلب یعنی نفی حرکت در نهایت به اثبات نوعی کمال برای خداست یعنی که میگی خدا متحرک نیست یعنی این دیدی که یعنی میگن یعنی ثابت است و بیانگر صبات از است یعنی و کمال مطلق خداوند که چنین معنای با وجوب وجود و کمال مطلق خداوند ناسازگار است و رضا باید آن را از ذات الهی سلب کرد لیکن این سلب یعنی نفی حرکت در نهایت به اثبات نوعی کمال برای خدا باز می گردد. زیرا نفی نقص چیزی جز اثبات کمال نیست چون کمال اصلا ما گفتیم صفت باید بیانگری کمال باشه وقتی طوری یه چیزی سلب بکنی چی کمالی بخوادشون بده؟ میگه معالش به چی برمیگرده معالش به اون یعنی برمیگرده خدا متحرک نیست یعنی ثابت است درست شد خب ببکر این واقعا فهمیدید فکر میکنم خیلی عالیه یعنی انصافا آره این همین هم خیلی جمله عالیه این نهایت انشالله که من خودم که به وجدم. حالا حرف اینه خب آقا اگه صفات سلبیه منجر به صفات صوتیه میشه خب چرا از اول صفات صوبیتی رو اره متعددش نکردن یه خود اونو بیشترش بیکردن که ما اینجا به نگیم که یعنی اون خدا متحرک نیست یعنی که ثابت است خدا این نیست یعنی که آن است که چون باید به کمال دلالت بکنه دیگه چون باید بیانگره خصوصیت صفت اینه دیگه ها دیگه کار نکرده دو تا دلیل داره ما یکیشو میگیم دلیل اینه که آقا در بعضی از موارد بیان صفت ثبوتیه درکش سخته ولی اگر صفت سلبیه رو نقص کنی همه میفهمن مثلا وقتی شما میگید خدا جسمانی نیست میفهمی یعنی چی ولی جسمانی نیست یعنی مجرد است اما مجرد است رو همگان نمیفهم اون مجرد یعنی چی یعنی نکرده مجرد است رو همگان باهاش از ذر ذهنی ندارن رضا صفات سلبیه تا به کار بردن تایفه یا از صفات چی صبوتیه این مثالش رو زیاد شنیدید دید از بندب شاید شده باشید گفتش ايش هست بود که اونارو آب خوابیده داش آب بخور گفتش که آقا آب و خوابیده نخور عقل رو زائل می‌کنه با عقل چی گوی چی بابا بخور چون اگه بخواد بگه این این حرفو نمی‌فهمه شو بخواد بفهمه راجب عقل بخواد صحبت بکنه که نور الان اعل نور دیگه هیچ چی دیگه ولش کن با. با نمیشه جان بنابراین بیان اینکه صفت سلوی صفت است باید بیانگر کمال باشه شما دلیت صلف بکنید چجوری میتونه بیانگر صفت باشه میگه آقا صفت سلویه در انتها منجر به ثبوت صفت میشود اون واژه یعنی تا آخر عمرت یادت نره یعنی خب چرا اون یعنیه نمیگن؟ چون بسیاری از موارد اون یعنیه درکش خیلی سخته ولی اینکه خیلی آسونه اینکه خیلی آسون تره بنابراین این هم به نظرم یاد که نکته بسیار مهمی بود و خوبم شد که گفتم در قرآن کریم ما اشاره به صفات جمال و جلال رو در آیه شریفه سول موراکه آیه 78 داریم تبارک از مربک از جلال و اکرام این پربرکت است و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو اونجا دیگه جمال نداره جلال همون صفات سلبیه هستن ولی اکرام که باعث بزرگواری و کرامت میشن همون صفات جمالیه این تعبیر جناب صدر صفت جلال عبارت از از اون چه ذات خداوند را از مشابهت با غیر آن منزه می‌دارد و صفت اکرام عبارت از اون چه ذات الهی به آن آراسته می‌شود پس صفات از حزته هم صفات جمال است که ثبوتی است و صفات جلالی هم که از خداوند چی بشن سرد بشن چون موجب چی میشه؟ اینکه خدا با سایر موجودات هیچ شباهتی نداره پس خداوند با صفات اکرامی وصف می‌کردند و کمال است که کمال است و با صفات جلالی و با صفات جلالی از نواقص پیراسته می‌گردد که منجر به کمال است خودش کمال نیست بلکه چی آقا منجر به کمال است اینه تحصیلم سلویه و صفات صوتیه. اما یه تحسین بندی دیگه برای سفاته دارن. لطفا برای جلسه اول فکر میکنم بس باشه. فکر میکنم بس باشه تا بر جلسه بعد انشالله به طور مبسود و مستوفا انشالله بیان بکنیم. الحمدلله.